گگرانی عزیز شوتن شد، خوشخالین لبشی ششمی خون نویی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نولاتن فرمون لگل بن. هجار بردوم بی لسر گرانوی سرگوزشتی یعنی خوی، لسر اویی که چونچونی توانویانا لگل هور فقیه کانی دا کاریتیک لخلیفه بدزنو دوی اوی که خریکه عشق راده بند. پیان مستا پیانداله یو خودتان دخوکن، خلیفه با کاریتاد زینکی زنی وا، لیمان تو ریا، من بندرمیو زمانی خوش جوابی ادم وا، بلکو دسال گریو شکات من لینکا. خلفه بر لهرشت شو حضرت ولکود دستی کرد بعد تقوه هری در بسیج دانده، او سه تجربه وی، فقیه یه خودان با مسلمان و خدمتکاری قرآن دزنان، عیبناکند زی در دکن، ملا محمد کن صحتی امی کرد بو، سری لبن لفحلیناو بی سیودو گراندی، پیوت هی ریش کلک سعی سجباب، وقتی هات واقصی سجب فقیه بلی هستم حزار شقتی حالا دم، خلفه دمیبو بطلای تقوه. مالبریو بکوی زوخلبه هر در پر یوسف صافی به شنیده پل بونو به بولا بول بر مالی اغا رویشتن بختیه ما مستعله حوشاد دست نیوژ دشو پر تو بولای خلیفہ د 22 پیداله ها خلیفہ خیرہ ای جواب د تاوا بله فقیکان کریتیان لزوم که با کور کم ناده سربارش او خره پیان کردوم د چمل علیاغا اگر حرمتی شیخی تویالی للابی دبی اوانم بودتن بکا ماموستا بزمانی خوش خلیفه خودکاتو کخوی توالی بودستینه ماموستا با خلیفه و هات نصر من دمی کردو چایو قچن هزار جنویده پیوتین رو راشینه چون فکر زیاکا اویش لپیاوی کیوا مبارک سریخو من دخستو ملمن حیث کرد متقمن لبر نهات تدر. جوینو حراشه ماموستا که بمز استان دلتن دکم جیش ترعادی که قربان من گردنتن آزاد دکم توجبیان بخش و دریان مکا خلیفه رویش بلکه ما ماست آل جنودانو لام کردن دستی حل ندگرد وتم قربان خود فرمود در بدن قید نکا لپر قایپی کنین دا و توی اگر وابی دار و هر دارد زیش هرئوابون خواب تانگری بنو نیرو اموریشتان دزیوه، اما واللهی کاری چرتن هر او بوا که بدلی او خلیفه سگبا بوا نوا دا سوپه لی نیال با خوم گرم کموا اتر بو خلکی آوائش سگبواوا که جندوکی دردز لحوزره فقیانو سری حال داوا شویک لحوین دا دو میوانی ما مستحبون یکیان ملا علی حمامیانو ملا یترش بناوی ملا احمد سممیی لبر هیوانی مزگود کورمان بستبو بو علی باسی نشته و وفقی دکرد که زور بکارن ملاعحمد دیگود خرافات و درون ملاعالی دیگود من وفقی چوار گوشی نو بتال دزانم دتوانم همو کاریکی پیب کم ملاعحمد وتی تی؟ آخر ما مستاجین من دو سال هر درسی وفقم لخزمت خود خوند که او وفقشت فیر کردم جارگ لپاش لگدانه حساب نوی ملائکت که لیدر بې مولا غيغي تا 16 غيو لې الک اخر خو چون حال دګری لې امه نازیرک تر کنهمن علي احمد بایز سواره سوق خوش لسر زمان خدا نه وي نه دی وتول ملائکتي خو ابن الا وادريش دامن پکنينو کیشه خلاص بو شوي کی تر لو شوانه هر خو من بوینو له حیوان مزګوت رونیشته باسي وفقو نشته د مز رايوه ما مستاوتي دلين له هندستان دعا دزانن کابر هم کز دبیني کس او نابیني ګيار درويا وتم نخير اما راستو دزانم پي ان سيربو وتيان چونا شونمنده اشاره تکم لم ما مستا کړ قادري سوختي نرد او مال کقند قندو چاي بيني او بلکو او سحراب بينين تا قادر هاتو وتم ګياندن کوم رازم چيا ما مستهلي پي چم کدي دم گود جندوکی کار بدستی او سحره شوال خود دادم خنکیان همو تکرار دوای پیکینان یان دکردو قله لحمن شلگیر تربو لبر مامستاد پر روا ک زوریم لبکاو او سحره ببینه آخری دوای خوردنی ک زور وتم دبیم دالشین اباله بی تو او سحری لبکم قله با سوئندانو رج دبوه ک من نبالم دروشی دکرد قا قزی چند شوارگوشی کملاکش او پر مقد لجمر و حروفی عربی وک طا و با و صادو آماده. قلم قالم بردا جوری مسکود. پارچه کم لقاق زک دریو خصم با خالی و پیمود. منو کسی ترش تو نبینی ولی اگر دنگد بی دزنی لشی. اگر ام پارچه لی خم سوتیم توک خود لی د تو دیو برشاو. قلا هات و نوکر. کس او ریله نده پرسی چی لیهد با چوید نرد فیلمان لیه مکه قاله با ازمونی تاو کلاوی بدمو شو چوا بردمیما مستا حال تروشکاو گلتی پیدا کرد وتم نا توانین بچاو بیبینین با با پلاکوتیو لقایوشتن حول بدین بلکوددن جیلی درچه همو راز بوینوا قاله لناو منده چاقیوا شق دسرینک حال ددین پل برود دیوار دکوتنو بهمو همه ی ازی خوان شقق دقلا هلد دین. هر قنجش ناصرنی رنگ پتر ساعتک بر شق منده. او هر دمی لخوار دکل دین او لیوابو نی هست من کرد کابراهی کندهی بود داده. پارچه در راکی سحرکم خستن آگردانی سماور. دوکالی حت وتم او تا قلب خویلی هتا. ایتروهایی نگمی حرخش من غیب کردنو تی هلدانی قلبو ک خويده پر را و غييب کينو حلواي بشقاني بوبيجارين ترانات پروژه همو مان لبندي وشتپه ملمان دکر قالم غييبکل چون کشلپيل اوداد هات لسريک تيمن هل ددا تاوي ما مستا خو خاطري خدا به مل الرحمن بلې وکوم ليب کاتوا خونګم ديشه او ديګو هي خو اودن خويتي دي ساتي هلدن باسي غييبونه هل زماني قالو کوتنو پیوان ترسیان ره نشته بو، من اوا خوام غیب کمو خوانه خواسته بچمه جسته کچو ناچار سحری غیب کردن من بر بست کرد. سحری خوش لودایا، پاش چند سالک روژک لشاری صابلاغ بمزگوتی که راده بردم. دیار بو خلکی زوری لیا، پرسیم و تیان ملایک اجازه وردگریو شیرنی خواردنی اوا، چو مجور دیتم همان قالی سختکی خواما جبه یکی تازیان دبر کردو. اجازې نامه یې دخو د نو ک ملا بوخو بوټملہ چومله پنا دانشتمو پیروزبایم لیکل وتی ما مستا به کل راهي خدا او دعایم فرکه کمنه پیغېب دکل وتم جن دوک نابن ناب با پیربی او دم تید دګ ینم کچونه لوښتپه او مان لبیر کی زور کول بسط لو ګوریس حل دکېشه لو او حال کیشانه قرچا لپشتمو حاتو پشتم کور بو او ځانی زوګرانی دکړ شکست بندیک لده دا بایهنامو جیو چند روژان لسر جا کوتم سید اولاشیتیک هبو مسخری اغیان بو کچه کی لوشتپ خواست حتا حجره که بچین ماریکن. گوت من حقی مارا برانکد نهیناو سویندی خواهد که ماویی بدین تا دچه تبوکن دو کلقندو تا پیک میزر من بودینی و تم خودزانی بستن هيا. اگر دروب کی دد بستم ایتر دروی کردو پی پیدا کنی پیدکنی کدستی برا منیجدم گود بستو می، شوی زوایی بسترابو، هاوریان بو هیناین جواب من ندانوا، حواری بو آغا برده بو، نردی بشوین ماوتی من او پینج کلقندو کل دو طوب کتان تان دادمی بکنوا، حتما حجرو خبرمنده کراوتاوا، کابرا بو بزاوا، دسا باورکن نبست بو منو نهیج، بلان ترسکی وای بسره نابو، روشی ججنه یک دگل ما چوی نمالی علی آغا علی آغا که یک بو بلام زمانی فارسی دزانی پرسیاری لفقیه کان کرد فلان شد با فارسی چیا؟ با فیسرشت شد چی؟ شیر اکی سعدیم لیا پرسیار و کدلی چند دست دین که گنبدی باییا بسترابو علی آغاو تی من لشی شیراز دیتم گول لسر گنبز دادنین و ندزانی گنبد ب پیاله دلن لکیده لبرهانی خاطئه ده خو دیوته بله دابچین برهان بینن ان بله من درو بو نم دیبو لملا قادر پیرم بیسته بو کزور فارسی زانی چک بو هر معنی گنبد لیدراو پیاله نهت همو جنم وس اره قره اخری توشی هاتن که گنبد به معنی پیاله با ظاهر من سر کود، بلا پاش شش سال تابیرم دیتا و شرم دم گری. دروی بو چه بو؟ بابم گوتا ملاق خادر وایده گو. ایتر تو بیه وای پی کردم که همیشه تم بیبم. زور کسی تریشم دیو. کشتی کی بوین گیراو دلن بسر خومن هاتوا. بلا اوان اوان باشا دروشین لسر سر بیتا و شرم نهان گری. لوشتا پاوت دچو مال. جاریک لو سفرانه دا خوابرای اکی دیکی بو و صادق. جاریکی تر چومو باو کم نخوش بو. نردی می سابلاغ بولای دکتور یوناتانی کونه برادری. تامن چومو در منم بوهنه بساغی فریانه کوتمو لآخر دمی جاندانی دا گیشت مصری و حتی و ماموه. بمردنی بابم. روپر یکی جیانم حال درائه و روپر دورانی من دالیم ده درائه و بیجی نازانم با سرچلی تانم بست و سریکی بدمه و جیانی نوفقیان براستی سرنجره کشه اگر کاملی که ها و ها ولاتی با ملتک دادنین با بروای من فقیش تا نبو نتملا ملتکی سر سربقون هر ملای وقباو من دیوه کراکی جگهی بگریته و زور کسی نخویندواری ایمانیش که خوشین لمله خندن یاسین کوریان دنیر ناو فقیان زوربی فقیه کورا بیوشن و کورا هجاری جوتیارن دسنه حجره دبی سوالی نان لما لان بکن بشی جل کوشمک لراتوه پیدا پیداکن، که بهاران و پایزان به آوائیو حبان و دگرین رونو پنیرو کشکو توتن سوال بکن و خویانی پیه پوشتکن و چای پیه دابین بکن خلق لزگاتی گنمو دراو بشین بدن خوند نکیان چونه تنک تی بگ ل سدان سالو بود تب او زیرک مواجه یعنی برنامهای درس بساتن سال نگور روا درس گذنواش هر ل آدای آنیا که لوکتی بنوافی رخ می‌دن بونو هر گیز برنامهای تازه کرد نود دستکاری تی داد نکر اوا نفقت تی دگرچه می‌اندو او خوی چی به و تو توا لسد فقه یکیان دوان حال دکون که حوت خوانی روست ما درچنو ببنا ملای باش اویدیش هموی لحوالی ریگا لناوراست بجماونو سر نکوتون ریگو پیکی خویندنو امتحانی سی منگو شش منگو سالانیان هر نبیستوا خوی و خوی تمبل و نتمبل بیک ریده درون زوربی وقتیان با برکی لگل کچولانو قسیش رو قور راد بوریه زور هرزوریان روتن، چلکنن، دجوینن، زور جمیان نانی هرزنو جویو پیخورین اوشته کمالان بخیر دیندنی دنو او همو مای خمو پجارده دویانت باری بیعاری شوانی سیشمو جمعه لیکو دبنو دیکنن بزمو پیکنین کمتر فقیم دیوا زور جوی بدات باری عینی هموین برانبر باشیخان بدبینو بی یاقیدن جال تبزور شد کن کل لای خلا جناح قصیدهای بردی های ک عربی او ل پس نی پیغمبر او با بالا ل بردنم مبارکی بعد دستی جل دخوانن فقیه کوچمه کناین زن را و کرد وقت جال تجارو با خوانی او و قصیده عربی که جمعه لا پس و کسی فقیه کل او کداب نوا. دې قصیده بطنیه کداکاته ورګیه بخویننه نوا امچن بيتم لو قصیدې لبرماوه فقينا چاكي بزنن مزګنيه کود ددمه ضيافتي کی زور چور بون دي بدستي شمه هر چشتي کی سور چوغه ساوره ليدور کوا شو روز حاضره لحجره وختي جمع استغفر الله من ساوارو الماشنه اگر لبرسن بمرم شرط دمینا کمی، افریم من بکر، اتوی تا فی سکر، زیافت وکوشکر، دلی نیه اوجار کمی، یکی کدنجوش دان دانهای بی تکانی دخواند او، رادا وسطا آوانیتر بغل، سربندکیان دخواند او دیانگود، دتیکا لیکا بچاکی پاروانی لبکا، لولی دا قوتب دا، هتا زجد دجمی. یان لحسای ختم و تعلیلی تکیه شخان انده کرده و به دوره دادنشتن چراقیان خفاده کرد سر تعلیل بایداده مزراندن لا اله ها نه، نا تاوکی باش با کامل اماین او جر بایده دا گوارین دندوک تک را جزم بونی درویشان ملین لیدنه دندوک دندوک دندوک دبوه سوار هلکاو هتادوهی لحسای قرآن خوندنو تکبیری ججنیان دکرده و یکی اگنابی ولاتی بدنگی که بلند خویند. مثلان دی گود و شاولیو بایزاگای و قارنیا و گلوان دویدو سی آیتی و ملیخوارده کرده و. جوگران تکراده انگود پلاو بنکر پلاو بنکر لا بامیتا لنا إلا شلاقاورما پلاو بنکر بلحمو و وا. گویا جارک چند فقیر لیا کودم نو دزدکن با غیبت کردنی حرچی دیتا بیلین. کارزور دریجه کشاو گیشتونه تا باسی ملائکتانیش لپاش هندیک رمان یکیان گوتویا آآ نقل اوی خدای تبارکو تعالا کارا لره که بابره می پیغمبر نردو سری کچل کردو هنده پیبله و بی ذبحین عظیم بلامجی گلو جور گلتو گپانه با تکرای لنویجو روشو گرتنده زور خیرابون بله الآن في نوارج سبينة تنباليان دا كرد بلام ايوشان بخزا دا جيراوه لزينا و داين پيسي زور با دور بون حز لكتان کردن نداز اگر ره كوتبه ما چومو چهك تنه دا پاري او چند سالي فقه بوم نم بيستو فقه يك لسر جنجي رابه دو جاريش لبيرما كفقه كي جيد الخوازي خوان هل گرتبه ايمان يان بخواه قرآن و اسلام بتو بو منیش کچند سالک لناو او کاملگای در و اردو شو روشم درباز کردوا دیار لجیان فقیه تیدا زورم پیوانوسا و خون پیگردوا کاتی لاوشتفه فقیه بون لشوی پازده شابات دا کجیجنی براتا وگباو قرآن من هنو یاسینو دعای برات من خوند از اد بشداری نکردین وطی او باو دو آخرندنا لباتی روزی زیاد بون لرسق و روزی ببشدابن من تجربه کردوا جو من پیانه دو خوش من تو را کرد، جران که همو بیانیان، هیسنه با ماستیک، شیری جیک من دزدکود بیانی او راشنانی گنمیش من نبو، دو سی لطکانان جوی وشکو بو من از اد پیه من پیدکنی و دیگو، ها، نم گوت، ایمشی پشی من کردوا، گوت من دسا چاری در چیه، و تی هستن، قربان، سفرین من لناو حجر دا برشقان دا تامندو بوین، هر وادایت و زیک جنیک بقاپیک ماستو چنانی گن میتازه و گرمو هاتوتی فقیکان نظرم کردوا امام بو یوهیناوا گوگرانی عزیز لیرده حتینا کتایی بشی ششمی کتابی چشتی مجاوری حجر مکریانی تا شوی کیتر جیانتن پربیت لشادی و پیکنید.